هرگز نمیتوانی بفهمی که واقعاً چقدر به چیزی اعتقاد داری تا زمانی که درست و غلطش مسئله مرگ و زندگی بشود. اینکه باور داشته باشی یک تناب سفت و محکم است کار آسانی است تا وقتی که فقط از آن برای بستن یک جعبه استفاده می کنی ولی فرض کن که مجبور بشوی از آن تناب بالای یک پرتگاه آویزان بشوی. آن وقت برای اولین بار کشف نمی کنی که چقدر به آن تناب اعتماد داری؟ سلام الیه سخاوتی هستم با برنامه نهم پادکست 822 امروز دوشنبه چهاردهم فروردین 1396 چهاردهم فروردین یعنی دیروز 13 به در بود جای شما خالی ما مهمون داشتیم مادرم و خانواده برادرم اینجا بودن و من پیتزا درست کردم با همون خمیری که نون میپزم یعنی تقریبا با همون خمیر با یک کم تغییر 4 تا پیتزا درست کردم یا درست کردیم به کمک هم مواد اصلیش یعنی اصلی ترین مادهش همون خمیره بود که هیچده ساعت تا 20 ساعت تخمیر میشه دستورش رو هزار بار تو این پادکست براتون گفتم و سوس روش که اونم خودمون درست کردیم با گوجه و یه سری ادویه و پی پیاز و سیر و نمک فلفل و و پنیر موزارلا س... تازه و یه سری مخلفاتی که معمولا روی پیتزاها می‌ریزن ظاهراً بد نشده بود فکر کنم با این خمیری که من یه یک ماهی هست که شروع کردم دارم درست میکنم خیلی کارهای دیگه میشه کرد که من هیجان زدم همش رو آزمایش بکنم بعد از بردن پیتزا رفتیم پارکی کنار خونهمون پیاده روی ساعت 5 بعد از ظهر بود کم کم مردم داشتن از 13 به در میرفتن ولی هنوز جمعیت خیلی خیلی زیادی بود یعنی پارکی که معمولا من اونجا میرم پیاده روی و 4 5 نفر آدم بیشتر توش نیست در هر ساعتی از صبح تا شب سوزن نمیشد بی اندازی بر خلاف انتظارم تو نخورد یعنی 13 به به نظر میومد که نایس برگزار میشد یعنی خیلی چیز وحشتناکی نبود مردم در صلح آرامش نشسته بودن و به نظر میومد زمانی که ما رفتیم زمان آشفته بود یعنی تمام خانواده هایی که اونجا بودن یه قابلمه آشفته یا بار گذاشته بودن روی پیک گاز پیکنیکی بعضی روی آتیش و زغال ولی بیشتر گاز پیکنیکی و گاز بود خیلی هم در حال خوردنش بودن آشیشون ناماده شده بود و داشتن میخوردن رعایت همچین سنتی در یه روزی نه چندان به حال هوا خیلی هم مطبوع نبود هوای به خیلی خوبی بود ولی یکم سرد بود نم نم بارونم داشت می گرفت اون موقع یه همچین دیدیکیشنی که شما وسایل آششتر رو با خودت هم بکنی به وسط پارک و گاز و قابلمه و کاسه بشقاب ببری برای آششته تحبود خیلی زیادی میطلبه و تقریبا از هر ده تا خانواده که من چک کردم نقطاشون وسایل آششته باشون هم، همراهشون بود و این در کناره هم قرار گرفتن خانوادهایی که اوندتاً چادر هم داشتن و چادر زده بودن توی پارک خیلی چیز نادر و عجیبیه در حالت عادی که خانواده های قریبه کناره هم دیگه, دیگه یه فاصله ای رو رعایت میکنن روز سیزدر به در این شاید واقعا نیمه پر لیوان باشه که اینقدر نزدیکه هم قرار میگیرن به فاصله یه متر دومت چادر یا زیراندازشون رو برخام میکنن و شروع میکنن به نمیدونم هر... هر کاری که انجام باید تا تو سیزده به در امدهش خوردنه یعنی منم یادم میاد که زمانی ما بچه بودیم با داییا و پسر داییا میرفتیم باقی پدر بزرگم نبت درصد اکتیویتی که ما انجام میدادیم به جز بازی که میکردیم خوردن بود یعنی آجیلی که از مراسم عید اضافه اومده بود و همراه میوایی که اضافه اومده بود و غذا که نهار بود و بعدم بعد از ظهر حتما ناشه رشته شاید توی اون روز سیزده به در یه نفر به سه روزش غذا بخوره چی داشتم میگفتم؟ آره چادر برپا میکنن رو میندازن و مشغول خوردن میشن معمولا همه یا توپ دارن یا بدمینتون یه وسیله بازی که در کنار چادر یا جایی که پیدا میکنن بازی هم میکنن فکر کنم خوش میگذره سیزده بدر در حقیقت تنها روز خوشگذرانی و فان تعطیلات عید محسوب میشه به نظر من از اون مراسم سخت و سنگین دید و بازدید و ایدی دادن و ایدی گرفتن و مسافرت های خطرناکه بگذاریم سیزدر به در تنها روزیه که شما توی همون جایی که هستی تو محلت یا پارک نزدیک یه بساتی بپا میکنی بازی میکنی یه چیزی میخوری و یه روز روز نسبتاً ریلکسی یعنی من هر کسی نگاه میکردم حتی اگرم از بازی خسته شده بود توی چادر دراز کشیده گشید بود و داشته داشت سرعت میکرد ما این کار رو توی خونه انجام دادیم یعنی بند و بساتو بیرون نبردیم هر کاری که لازم بوده تو خونه انجام دادیم و فقط یکی دو ساعتی رفتیم و قدم زدیم و برگشتیم و بعد از اینکه برگشتیم آششتمونو خوردیم و بعدم یکم تخته بازی کردیم تا، ساعت 9:10 که مهمونامون رفتن. این 13 به در ما بود. یه کار دیگه هم که چند روز پیش کردم علاوه بر نون پختن این بود که روی یوتیوب یه ویدیوی خیلی اتفاقی برخوردم درباره درست کردن خمیر ترش یا ساور دو. خمیر ترش به نوعی همون مخمره چیزیه که به روش طبیعی درست میشه یعنی مخمری نیستش که شما توی قوطی از سوپرمارکت مارکت میخرین طرز تیش هم خیلی ساده است حتی خمیر ترش این چیزی که من میگم اگه بخوام دقیقتر بگم استارتر خمیر ترش هست خمیر ترش در حقیقت همون خمیریه که باهاش نون خمیر ترش یا نون با خمیر ترش یا دو برید درست میکنم استارترش یا همون مخمرش اینجوری درست میشه که توی یه شیشه مثل شیشه سس یا شیشه مربا یا شیشه خیارشور یا هر ظرف دیگه‌ای شبیه اون یه مقداری آرت میریزین و یک هم آب تقریبا یک دوم یا دو سومش آب و اینو هم میزنین درشو شل میذارین میمونه 24 ساعت و بعد از 24 ساعت این قارچایی که توی خودش هستن یا توی هوا شروع میکنن به تولید مثل کردن و زیاد شدن مثل کپک یا سایر قارچا من اول فکر میکنم این مخمر نون باکتریه که دیروز فهمیدم قارچه و من حالت هنوز فرق قارچ و باکتریه نمیدونم و مخمر نون از خانواده قارچه بعد از 24 ساعت شروع کنه به تولید مثل و شما باید مثل یه خانگی بهش غذا قضا بدین قضا به این شکل که تقریبا معادل همون میزان آردی که هست یعنی همون خمیری که توی شیشه دارین باید بهش غذا بدین یعنی اگر دو قاشق روز اول ریختین همون میزان یعنی دو قاشق باید بهش غذا بدیم با آرت ایده اینه که هر 24 ساعت دو برابرش کنیم و این میخواد که دو برابر بشه به خاطر همین بعد از چند روز میزان خمیری زیادی تو شیشتون خواهد بود که دیگه جا به اندازی کافی برای غذا دادن نداریم و مجبورین که نصفشو دور بریزیم برای همین قبل از اینکه که خیلی زیاد بشه بهترین ایده اینه که با کمترین حجمی که میتونین شروع بکنین من با دو یا سه تا قاشق قاشق سرصاف غذاخوری شروع کردم فعالیت این قارشا توی یکی دو روز اول خیلی زیاد نیست شاید یکی دو تا حباب بتونین مشاهده بکنین توش خیلی رضایت بخش نیست ولی باید صبور باشین از روز چار پنجم پنجام دیگه خیلی شدید میشه و روز پنجام کاملاً تاکسیر اینا رو مشاهده می کنی. حتی صداشون هم میتونیم بشنوییم. یعنی اگر گوشتون رو نزدیک کنیم به اون شیشه صدای ترکیدن هوابایی خیلی ریز به شکل خیلی ظریف و رمانتیکی به گوش میرسه. حالا من میخوام یه استتوسکوپ یا گوشی پزشکی هم از برادرم بررز بکنم و روی شیشه بذارم و ببینم این صدا رو میتونم دقیق تر بشنوم، بعد از روز چهارم روم ظرف چهار پنگ ساعت یا هم کمتر حجم مخمبر شما یا خمیر ترشی که درست کردیم تو شیشه دو برابر میشه فوقلاده صحنه و سراسر و سر خمیر شما رو از بیرون شیشه میتونیم ببینیم که حباب فرا گرفته این فراین حوازی یعنی اکسیژن رو میگیره و دیوکسیب کربون تولید میکنه به خاطر همینم هم سر شیشه رو نباید سف کنیم بعد از پنج روز که به این میزان از فعالیت میرسن این قارچا شما مخمری دارین که دیگه قابل استفاده است و من بعد از ضبط این پادکست میخوام اولین نونم رو با خمیر ترش خمیر بکنم اگر نخواهیم به این میزان غذا دادن و بیرون ریختن اردو خمیر ادامه بدین باید درشو بذارین و بذارینش توی یخچال توی یخچال. ظاهرا فعالیتش خیلی کند میشه و دیگه نیازی نیست وقتی که توی یخچال هست بهش غذا بدین هر وقت هم خواستین استفاده بکنین یکی دو روز قبل باید از یخچال بیارین بیرون نصفشو بریزین دور به همون میزان دوباره آرد و آب بهش اضافه بکنین و یعنی بهش غذا بدین و یکی دو روز صبر بکنین با همین غذا دادنه تا دوباره به اون میزان از فعالیت قبلیش برگرده تا جایی که ظرف چند ساعت دوباره بر بشه زمانی که به این حالت رسید دوباره میفوید ازش با عنوان مخمر توی خمیرتون استفاده بکنیم امکان دارم به واجه محیط کشت برخورده باشیم توی آزمایشگاه ها یا نمیدونم زمان تبیرستان یا همچین چیزی داشتیم که باکتریا کشت ها رو کشت میدن توی محیط کشت این شیشه هم در حقیقت محیط کشت قارچه کشت کلمه انگلیسیش اگه اشتباه نکنم كال، و کالتیویشن همون کلمه که کالچر یا فرهنگ هم از اونجا آمده مشاهده ای این شیشه و این قارچایی که زیاد میشن و بعد از چند روز سرعت زیادشون خیلی زیاد میشه طوری که اگر بخوایم بهشون قضا بدین فضا کم میارین و اگر بخواین فضا کم نیارین باید یه تعدادشون رو بریزین دور یا به عبارت دیگر قربانیشون بکنین باید سه تا قاشق قارچ رو قربانی بکنین که سه تا قاشق دیگه به حیات و تولید مثلشون ادامه بدن این, این خیلی برای من اعلام بخش بود به خاطر اینکه من یاد سایر عباد زندگیمون انداخت و به خصوص که هفته گذشته دوباره در امتداد فوت پدر که دو هفته پیش اتفاق افتاد من شاهده مراسم که نمیشه گفت ولی صرف شاهد فعالیت های دیگه ای بودم که عمدتا از جنس قضا دادن بود یعنی خیلی جالبه که زمان کسی فوت میکنه اطرافیانش خیلی فکر میکنم به این که به دیگران عمدتا به نیازمندان قضا بدن و واجه های مختلفی هم تو این زمینه هست مثل ختم انعام اگه اشتباه نکنم یا اطعام یا همچین چیزهایی اگر شما توی بهشت زهره برین و یک ساعت اونجا بچرخین من فکر کنم به اندازه یک روزتون قضای مختلف میتونید دریافت کنیم از میوه گرفته تا پنیر آش عدسی هر چیزی که فکرش رو بکنیم من فکر میکنم بستگان کسانی که فوت کردن توی بهشت زهرا نظر و نیاز میکنن شاید اصلا بد نباشه یک خیریهی وجود داشته باشه که اونایی که گرستن رو برسونه به بهشت زهرها مثل مثلا تور رفت و برگشت بهشت زهرا از جاهای مختلف شهر یا دقل از جاهایی از شهر که گرستنها توش بیشترن این میتونه خیریه خوبی باشه به جانه که ای ای ای ای ب... یعنی به کافی قضا هست کسی که بتونه بره به هشت و برگرده قاعدتا نباید, اد... نباید بتونه ادعا بکنه که فضاگیرش نمیاد یا از گرستنگی رنج میبره به خاطر همین شاید, ف... شاید فکر کردم که مرگ پدیده مرگ به نوعی ارتباط پیدا میکنه با قضا دادن یعنی وقتی یه نفر از چرخه زندگی هست میشه به هر دلیلی دیگران با غذا دادن به بقیه و به بقیه این سیستم به نوعی احساس میکنن که حیات کل سیستم کل جامعه بهتر تزمین میشه یا حس بهتری دارن از این که مشارکت میکنن در تزمین, بقیه، تزمین بقای بقیه افراد جامعه ممکنی همچین تئوری صحت داشته باشه نمیدون ده سوات culture یا cultivation معنی معنی حتی ریشه کلمم به ازدیاد مرتبطه من این روی ویکیپیدیا سرش کردم یکی از تعریفی که برای culture وجود داره این هستش که فرهنگ داشتن به این معنی هستش که شما یک جایی رو به شدت ابترین چه جوری ترجمه میشه واقعا انگلیسیش هست تو انهابیت پلیس سافیشنطلی intensive. یعنی جایی که شاید منظورش اینه که جایی که منابع کافی برای کالتیویت کردن داره تو انهابیت پلیس سافیشنطلی انتنسیف تو کالتیویت یعنی شرایطی که این تعریف گذاشته این هستش که بتونی اون مکان رو کالتیویت کنی یعنی رشدش بدی درش چیزی تکثیر بکنی و شرط بعدی هستش که to be responsible for it یعنی احساس محصولیت بکنی نسبت به اون تو respond to it یعنی پاسخ بدی به اون محیط به, به هر،, هر چیزی که به سمت شما میفرسته بتونی پاسخ بدی تو اتند تویت یعنی بهش به پردازی نگهداریش بکنی تو اتند تویت کیرینگلی یعنی با اهمیت دادن ازش مراقبت بکنی یا بهش به پردازی یا ازش نگهداری بکنی فرهنگ داشتن یعنی بخشی از فرهنگ حالا اهمیت دادن کیر کردن مسئولیت پذیر بودن این شاعت چیزیه که ما خیلی بیشتر برداشت می‌کنیم از فرهنگ زمانی که میگن یه نفر فر با فرهنگ بی فرهنگی یا فرهنگ ایرانی فرهنگ آمریکایی این بود از فرهنگ به ذهنم میرسه ولی ظاهراً یه بعد دیگه‌ای هم از فرهنگ هست که مربوط به کالتیویشن مربوط به رشد یه چیزی که تکثیر میشه جایی که این اتفاق نمیفته فرهنگ وجود نداره اگر این اتفاق صرفا بیفته و اهمیت دادن و مسئولیت داشتن وجود نداشته باشه بازم فرهنگ وجود نداره جایی که فرهنگ از تمدن متمایز میشه همه اینا با هم با همدیگه باید وجود داشته باشه که بشه گفت فرهنگ وجود داره من وقتی که هر شب بعد نصف این خمیرم رو یا بریزم، البته دیشب اولین بار فقط خمیر رو ریختم دور تا دیشب فقط بهش اضافه میکرم چون خیلی کم شروع کرده بودم دیشب اولین بار نصفش رو ریختم دور و امروز روز پنجمه که احتمالا بعد از خمیر درست کردم من رو میزنمش توی اخچال بنابراین یکی دو قاشق بیشتر خمیر ترش من حروم نکردم ولی این چند شبی که بهش غذا دادم دادم به عنوان کسی که بچه ندارم و تا حالا از هیچ شیونه خانگی بیشتر از دو هفته نگهداری نکردم یه, یه حس عجیبی داشتم. حس اینکه دارم به یه فرایندی که در حال رشدونه و یه سری موجود درش تکثیر میشن میپردازم، اتند میکنم و بهش اهمیتا هم میدم. یعنی روزی چندین بار یا شاید بهتره بگم روزای اول ساعتی چندین بار بهش نگاه میکردم الان که دیگه بهش گوشم میدم بنابراین همچین فرهنگی های ممکنه که باعث بشه که به خصوص زمانی که ما وقتی کسی رو از دست میدیم برای اهمیت پیدا بشه که باید به دیگران قضا بدیم خیلی پنیده جالبیه متنی که اول پادکست براتون خوندم از یه کتاب به نام مشاهده یک سوگ A Grief Observed این کتاب کچیکی نوشته C.S. Lewis نویسنده بریتانیایی این کتاب رو چند روز پیش کندم جالبی که من توی یکی دو ماه گذشته یا شاید حتی 6 ماه گذشته پدیده مرگ بسیار ذهنمو مشغول کرده و این یه اتفاق بود که در همین حین یعنی بعد از کلی مطالعه در این زمین و فکر کردن راجع به این بود که به هم فوت کرد خیلی،, خیلی اتفاقی بود و من قبلش خیلی راجع به این مسئله فکر کردم حتی با سابقونمون که یه آقای نسبتاً موسمیه داشتم صحبت می‌کردم چند ماه پیش اکثر حرفایی که می‌زدم ظاهراً به،, به مرگ ختمی شد یا بیماریی که منجره به ش... مرگ میشه به خاطر همین یه جایی در اومد که تو تو هنوز خیلی جوونی به زیاد به این چیزا فکر نکن فعلا زندگی لذت ببر فکر می‌کنی که من افسرده شدم یا یه همچین چیزی آره به خاطر همین شاید بعد یعنی این آخرین کتابی باشه که من تو این حداقل چند ماه پیش رو میدوارم در زمین مرگ خونده باشم کتاب جالی بود این کتاب خاطرات این نویسنده هست از مرگ همسرش که ایشون هم یه نویسنده ای بود میتونید روی اینترنت سرچ بکنید یه مقداری از داستان زندگی اینا رو یا اصلا خود همین کتاب رو بخونید A Grief Observed نوشته سیس لوئیس چیزایی رو که این نویسنده مشاهده کرده شاید تک تک ما در مرگ اطرافیان مشاهده کرده باشیم بسته به اینکه حالا چقدر اون فرد به ما نزدیک بود اگه خیلی نزدیک بوده این, این پدیده رو درون خودمون مشاهده کردیم اگرم کسی رو داشتیم مثلا مثل اه, کیس اخیر من در اه, خانومم و خواهرش مشاهده میکنم که چجوری واکنش نشون میدن نسبت به مرگ پدرشون یا یادم میاد که چجوری مادرم واکنش, نش... واکنش میداد نسبت به مرگ مادرش یا پدرش <تصفيق> یا یه, یه ذره زودتر همسرش که من اونوقع خیلی کوچیک بودم البته یه،, یه فراینده یعنی یه جایی تو این کتاب میگه که یه فراینده و این یه دفعه اتفاق نمیافته برای هیچکی این،, این سوگ، این ازا یک دفعه حادث نمیشه و فراموشیش هم یک دفعه اتفاق نمیافته ولی خیلی بالا پایین داره و کسی که سوگواره خیلی وقتا نمیدونه که چه حسی داره نمیدونه که چی از دست داده نمیدونه اون شخصی که رفته کجا رفته دقیقا کجا و نمیتونه باور بکنه که دیگه هرگز اون رو نخواهد دید خیلی وقتا نمیتونه باور کنه که چرا الان ناراحت نیست چرا واقعا ناراحت نیست چرا دیگه سوگوارشی رفته ناپدید شده دیگه گریه نمیتونه بکنه حتی حتی بعضی وقتا امکان داره خوشحال باشه یعنی بخنده احساس خوشحالی بکنه حتی تو همون روزای اول و،, و این احساس عذاب و وجدان و احساس گناه بهش بده همه اینا واقعی همه اینا وجود داره برای کسی که نزدیکترین کسش رو مثل همسرش از دست داده این پدید، این، این، کل این تجربه رو نویسندی تو این کتاب به بلم خیلی شیب و وزیبایی نوشته که کسایی که علاقه به پدیده ی مرگ میتونن ازش لذت ببرن شاید همون احساس گناه و احساس عذاب وجدان که کسی که دوستش داشتی قبل از تو رفته و تو موندی و هنوز فرصت داری که از زندگی لذت ببری و تجربه بکنی شاید همون احساس عذاب وجدان باعث میشه که به فید کردن بقیه سیستم بپردازی حداقل تو هفته های اول مراسم ناهار بگیری بری خورما و حلووا پخش بکنی یا رشته یا عدسی نمیدونم هر چیزی سالاد علووی میوه نوم پنیر، هر چیزی که شکم یه رو سیر بکنه. توی سیستمی که یه تعداد زیادی هر روز می میرن یه, یه روز این شانس رو پیدا کردی که یه روز بیشتری بمونی. اه من نیم خواهم بکنم به اون قارچایی که چون اونا شاید این خداگاهی رو احتمال زیادی این رو ندارن که به فهمن یه قاشقی وارد شیشه شده و نصفشون رو دور ریخته و اون نصفی که موندن این شانسو دارن که تکثیر بشن و دو برابر بشن ظرف چند ساعت ولی به نوعی ما به عنوان موجوداتی که حالا خداگاهی خیلی بیشتری داریم تکاملی یافته ترین, پیچیده ترین و انسان هستیم. این رو درک میکنیم که اون آدم میتونست ما باشه و به نوعی به دلایلی حالا اون قربانی شده قربانی شده که ما بمونیم شاید این البته بیمنطق به نظر برسه که اون قربانی شده که ما بمونیم این اینجوری نیست ولی ممکنه که ما در ناخودآگاه خودمون این حس داشته باشیم که ما به قیمت رفتن یه الان اینجا هستیم این مثلا توی زمانی که یه سری قهرمان ها توی جنگ یا توی آتش سوزی میمیرن خیلی بیشتر بولت میشه و کسانی که میمونن به شدت این احساسو دارن که به قیمت از دست رفتن جان یه ادهی اینا میتونن زندگی بکنن و زمانی که این اتفاق میفته پیبک این آدما به جامعه خیلی قابل مشاهده تر هست تا زمانی که آدم حس نمی که جانی قربانی شده تا اونا بتونن زندگی بکنن مثل همون باوری که آقای لویس توی کتابش میگه وقتی مسئله مرگ و زندگی میشه واقعی بودن باور خودشونشون میده آیا شما واقعا باور داری که این تناب محکمه و شما رو میتونه روی پرتگاه نگهداری یا نه یه پدیده جالب دیگه هم که توی این کتاب هست صحبت کردن با کسی که رفته به خصوص توی بهشت زهرا توی مجتمع اروجی ها من اینو خیلی دیدم که بستگانی که اونجا بودن خب قمشون ازاشون خیلی تراتازه است و شاید هنوز باورشون نمیشه که پدرشون یا مادرشون یا همسرشون یا دخترشون فوت کرده و توی جمع خیلی راحت یا شدم خیلی ناراحت صحبت میکنن باهاش صداش میکنن و یک طرفه یکی دو پاراگراف فار صحبت میکنن یا یکی دو تا جمله این خیلی پیده جالبیه و خیلی از این جملات معمولا بار پشیمانی داره ابراز پشیمانی میکنن از چیزی که باید میگفتن نگفتن چیزی که نباید میگفتن گفتن چیزی که کاری که باید میکردن نکردن و عکس شاید من فکر میگم نویسنده یه همچین چیزی رو توی کتابش گفته من دقیقا یادم نیست با وجودی که چند روز پیش خوندم ولی شاید دلیل اینکه یه همچین گفتگویی اصلا شکل میگیره و کسی که زنده است یه همچین جملاتی رو به کسی که مرده میگه صرفا مردنشه یعنی مردن اون آدمی که اصلا چنین گفتگویی رو به وجود میاره الان شما اینو به پدرت این جملوت میگی به که مطمئنی نیست 50 سال، چل سال، سی سال فرصت داشتی که اینو بهش بگی و لزومی هم نداره احساس عذابو وجدان بکنی چون زنده بود نمیگفتی بهش نمیتونستی بگی، نمیخواستی بگی ولی الان که مرده بهش میگی به شکل یک طرفه جوابی هم کار نیست و یکم هم احساس عذابو وجدان میکنی این خیلی پنیده جالبیه من دوست داشتم این پادکست رو حداقل یکی دو تا اپیزود میتونستم طوری, طوری توش صحبت بکنم که مطمئن باشم همه کسایی که به این پادکست گوش میدن مردن یعنی با یه ید... یعنی مخاطب هم میده مردن منظورم این... منظورم این نیستش که شماهایی که به این پادکست گوش می... میدید بمیرید یا من آرزوی مرگ شما رو دارم هرگز این, این... برداشت رو نکنید موضوع این بود که کاش میتونستم با یه برای مورده ها یه پادکست زب بکنم و مطمئن باشم که مخاطبم اونان و هیچ آدم زنده ای دقیقترش اینه و هیچ آدم زنده اینا رو گوش نمیده من فکر اینها خیلی متفاوت میشد یعنی گفتگوی آدم کانورسیشن یه آدم با آدم زنده خیلی فهم کنه میدونی که بالاخره یه چیزی میخواد بگه به محض شنیدنش یه کامنتی، یه نظری، یه, یه،, یه اعتراضی، یه تعییدی تو ذهنش شکل میگیره. یه،, یه چیزی کالتیویت میشه. ممکنه یه چیزی کالتیویت بشه. و, و یه جایی سر از فرهنگ در میاره بیرون این گفتگو. ولی زمانی که شما مخاطب روی حرفت با یه است، فرهنگی در کار نیست. چیزی احتمالی کالتیویشن نداره. خیلی جالبه. و این همه نشانه های زندگی دوروبر قبر مثل همون گندومی که یکی از ها نوشته یکی از شنونده ها نوشته بود که شهر اونا این کارو می و به خاطر غذا دادن به مورچه هاست. درسته که مورچه ها شاید خود از بدن متوفق بتونن تغذیه بکنن با و مواد غذایی خیلی قنی تری به دست بیارن جالبه که گندم رو روی قبر میریزن به خاطر اینکه این قابل مشاهده باشه یعنی کسی که میره اونجا ببینه که حالا مورچه ها دارن از این گندم تغذیه میکنن یه محیط کشتی به وجود اومده حتی روی قبر روی قبل که دیگه آخرین مرحله زندگیه و این نفر فوت کرده و اونجا دفن شده و آخر خطه کسانی که موندن میخوان این محیط کشت رو نه تنها توی پیاده روهای بهشت زهراد یا کنار مسجد که حلوه و شیرینی و خورم و پخش میکنن این محیط کشت رو برای مورچه های در یعنی در سطح مرچه های روی قبل میخوان ببینن که مطمئن بشن زندگی برای اونا جاری هست. این اینا فکرایی که به ذهن من میرسه من اگه واقعا فکر میخواستم با چند تا مرد صحبت کنم چی میگفتم شاید, شاید یه پادکست جانبی ضبط کنم و مخاطبم مردها باشه و هم منتشرش نکنم چون اگه منتشر کنم شما گوش میدید و فیدبک میدید. و میتونم توی پادکست بعدی بهش اشاره بکنم یا نظرم در موردش بگم ولی چیزهایی که اونجا گفتم رو هرگز منتشر نکنم تا زمانی که خودم بمیرم و یکی مثلا پیداش بکنی همچین چیزی اینم, اینم دوباره مثل همون تنابه است که شما نمیدونی واقعا بفهمی که چقدر بهش باور داری یعنی گفتگویی که شکل میگیره نمیتونه واقعی باشه مثل تنابی که دور جعبه میبندی این اعتباری نداره میزان اطمینان شما بهش خیلی پیچیده شد در حسابت این داستانه این هفته من بود مهمترین داستان من در هفته پیش رو درست کردن نون با خمیر ترشه یعنی قارچ که خودم پرورش دادم امیدوارم که شما هم قارچ پرورش بدین یا یه چیزی بالاخره پرورش بدین نشانی فرهنگ جایی رو که اشغال کردین تا زمانی که چیزی درش کالتیویت نکنین یعنی رشد و پروریش ندین و بهش اهمیت ندین بهش نپردازین، اساس مسئولیت نداشته باشین درش شما در بافرنگی نیستین به اندازه‌ی اونایی که با فرهنگ هستن جالبه که یعنی خیلی اگه بخوایم به ریشه کالتیویشن برگردیم فرهنگ cultivation of the سول بوده یعنی پرورش روح و روان بوده قبل از اینکه که پرورش جسم یا پرورش قارچ یا پرورش هر چیزی دیگه باشه مثلا پرورش پول و سرمایه در سرمایه داری یا هر چیز سنتی ده بعد از انقلاب سنتی قبل از همه اینا cultivation روح و روان نشانه فرهنگ بوده ولی الان کافی نیست شما کافی نیست که روح و روانتون رو پرورش بدین یه چیزی که جنبه خارجی داشته باشه باید با چشم بشه دید رو باید نبرورش که شما آدم بافرهنگی باشین که احتمالا هم هستید مسادیق بافرهنگ بودنتون پرورش قارش درست کردن نون غذا دادن به گرسنگان در بشت زهره یا شدن شدنتون از چرخه زندگی یا حداقل ترستون در این زمینه رو میتونید به 822 بفرستید تا هفته بعد خدافظ.